اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحکیم الخبیر به نام خدا بخشنده بخشایشگر حمد مخصوص است که تمام آن که در آسمانها و زمین است از آن اوست و حمد برای اوست در سرای آخرت و او حکیم و آگاه است یعلم ما یلیج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و آنچه در زمین فرو می رود و آنچه را از آن برمیآید آید می داند و آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه بر آن بالا می رود و او مهربان و آمور است و قال قل بلا وربي لتأتینكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قافران گفتند قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد بگو آری به پروردگارم سوگند که به سراغ شما خواهد آمد خداوندی که از غیب آگاه است و به اندازه سنگینی ذرهای در آسمان ها و زمین از علم او دور نخواهد ماند و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر مگر این که در کتابی آشکار صابرست ليجزيا الذين امنوا وعمل الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند اند پاداش دهد برای آنان مغفرت و روزی پرارزشی است والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اولئك لهم عذاب من رجز و کسانی که سعی در تکذیب آیات ما داشتند و گمان کردند میتوانند از حوضه قدرت ما بگریزند عذابی بد و درد خواهند داشت و یرالذین اوت العلم الذی انزل ایلیک من ربك که هو الحق و یهدی الى صراط العزیز الحمید کسانی که به ایشان علم داده شده میدانند آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است. و به راه خداوند عزیز و حمید هدایت میکند وقال الذين كثرهَّدكم على راجلی وبي اونكم إذا مزقم نكم لفی خلقم و کافران گفتند آیا مردی را به شما نشان دهیم؟ که به شما خبر می دهد هنگامی که مردید و سخت از هم تلاشی شدید، بار دیگر آفرینش تازه ای خواهید یافت. علی الله ان به جن بل لا یؤمنون بالآخره فی العذاب والضلال البعید آیا او بر خدا دروغ بسته یا به نوعی جنون گرفتار است؟ چون این نیست بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دوری هستند و نشانه گمراهی آنها همین انکار شدید است افلم یرو ایلا ما بین ایدیهم و خلفهم من السماء والأرض این نشه نخسف بهم الارض او نسقط علیهم كسفا من السماء این نفی ذلك لآیت لكل عبد منیب آیا به آنچه پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه نکردند؟ تا به قدرت خدا بر همه چیز واقف شوند اگر ما بخواهیم آنها را با یک زمین لرزه در زمین فرو می یا قطعه از سنگهای آسمان را بر آنها فرو میریزیم. در این نشانه است بر قدرت خدا برای هر بنده توبکار ولقد آتَيْنَا دَاوُودَ منا فضلا یا جبال أوبی معه و, له و ما به داوود از سوی خود فضیلتی بزرگ بخشیدیم ما به کوها و پرندگان گفتیم ای کوها و ای پرندگان با او هم‌آواز شوید و همراه او تسبیح خدا گوئید و آهن را برای او نرم کردیم ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا ان بما تعملون ضير و به او گفتین ذره های کامل و فراخ بساز و حلقه ها را به اندازه و متناسب کند و عمل صالح به جا آورید که من به آنچه انجام می دهید بینا هستم و لی الريح الریح قدوها شهر و رواحها شهر و له عين القطر ومن الجن من يعمل بین یدیه باذن ربه و من یزیغ منهم عن امرنا نذیقه من عذاب و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صوبگاهان مسیر یک ماه را میپیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را و چشمه مس مزاب را برای او روان ساختیم و گروهی از جن پیش روی او به ازن پروردگارش کار میکردند و هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپیچی میکرد، او را از عذاب آتش سوزان میچشاندیم یعملون له ما یشاؤ من محاریب و وجفان وجفان کل جواب و قدور اعملو آل داود و من آنها هر چه سلیمان میخواست برایش درست میکردند معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ قضا همانند حوزها و دیگهای ثابت ای آل داوود، شکر این همه نعمت را به جا آورید بلی اتّبعی کمی از بندگان من شكر گذارند فلما قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَبْتُ الْأَرْضُ تَأْكُلُ من سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَلْلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ با این همه جلال و شکوه سلیمان هنگامی که مرگ را بر او مقرر داشتیم کسی آنها را از مرگ وی آگاه نساخت. مگر جنبنده زمین موریانه که اصای او را می‌خورد، تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد. هنگامی که بر زمین افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در عذاب خار کننده باقی نمی‌ماندند. لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیه جنتان عین یمین و شمال کلو من رزق ربکم و اشکرو له بلدتون طیبتون و برای قوم سبع در محل سکونتشان نشانهای از قدرت الهی بود دو باغ بزرگ و گسترده از راست و چپ رودخانه عظیم با میوه‌های فراوان و به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را بجا آورید شهریست پاک و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده و مهربان ساعرض فارسل عليهم العرم وبدلناهم بجنتیهم جنتی لدواتی اکل خمط و افل و من صدر قلیل اما آنها از خدا روی گردان شدند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ پربرکتشان را به دو باغ بی ارزش با میوه های تلخ و درختان شور گز و اندکی درخت صدر مبدل ساختیم. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُ وَهَلُّ جَزِئِ إِلَّا الكفور. این کیفر را به خاطر کفرانشان به آنها دادیم. و آیا... جز کفران کننده را کیفر می دهیم وجنا غهم ووب التي برك نافها قوااهرات او وقددار ن وقددار ناف السير سرو فيهاالية و و میان آنها و شهرهایی که برکت داده بودیم، آبادی های آشکاری قرار دادیم و سفر در میان آنها را به طور متناسب با فاصله نزدیک مقرر داشتیم و به آنان گفتیم شبها و روزها در این آبادیها با ایمنی کامل سفر کنیم. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم, فجعلناهم احادیث و مزقناهم کلم مزق این فی ذالک لآیات لکل صبر شکور ولی این ناسپاس مردم گفتند سفروردگاه را میان سفرهای ما دوری بیفکند تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اقنی سفر کنند و به این طریق آنها به بخیشتن ستم کردند و ما آنان را داستانهایی قرار دادیم و جمعیتشان را متلاشی ساختیم در این ماجرا نشانه های عبرتی برای هر صابر گذار است ولقد صدق عليهم ابلیس فتبعوه من آره. به یقین ابلیس گمان خود را درباره آنها محقق یافت که همگی از او پیروی کردند جز گروه اندکی از مؤمنان وَمَا كَانَ لَهُ عليهم مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا, الا لِنَعْلَمَ مَن, يؤمن من, من هو منها في و على كل شيء سلطه بر آنان نداشت جز برای اینکه مؤمنان به آخرت را از آنها که در شک هستند بازشناسیم و پروردگار تو نگاه بان همه چیز است. قول دعو الذین زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذروت في السماوات ولا في الأرض و و ما لهم فیه ما من و ما لهم من هم من ظهیر. بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید بخواهید آنها هرگز گرهی از کار شما نمیگوشایند چرا که آنها به اندازه ای در آسمانها و زمین مالک نیستند و نه در خلقت و مالکیت آنها شریکند و نیاوار او در آفرینش بودند. ولا تنفع الشفاعة عنده هو إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قانو الحق و العلی الكبیر هیچ شفاعتی نزد او جز برای کسانی که ازن داده سودی ندارد در آن روز همه در ازترابند تا زمانی که ازتراب از دلهای آنان زایل گردد و فرمان از ناهیه او صادر شود در این هنگام مجرمان به شفیان میگویند پروردگارتان چه دستوری داده؟ میگویند حق را بیان کرد و اجازه شفاعت درباره مستحقان داد و اوست بلند مقام و بزرگ مرتبه. قل من یرزقکم من السماوات والارض قل الله و اینا او ایاکم لعلا او فی ضلال مبین بگو چه کسی شما را از آسمان ها زمین روزی می دهد بگو الله و ما یا شما بر طریق هدایت یا در زلالت آشکاری هستیم قل لا عما ولا نسأل تعملون. بگو شما از گناهی که ما کرده ایم سوال نخواهید شد. همان گونه که ما در برابر اعمال شما مسئول نیستیم. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم بگو پروردگار ما همه ما را جمع میکند سپس در میان ما به حق داوری مینماید و اوست داور آگاه قل الذي الحقتون بهشون را شركاء كلا بل هو الله العزیز الحکیم بگو کسانی را که به عنوان شریک به او ملحق ساخت به من نشان دهید. هرگز چنین نیست او شریک و شبیهی ندارد. بلکه او خداوند عزیز و حکم است. و ما ارسلناک الا کافتل لناس بشیرا و نذیرا الناس لای و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم تا آنها را به پاداش های الهی بشارت دهید و از عذاب او بترسانی ولی بیشتر مردم نمیدانند میگویند اگر راست میگویید این وعده رستاخیز کی خواهد بود قل لكم يوم لا ولا تستقدمون. بگو وعده شما روزی خواهد بود که نه ساعتی از آن تأخیر می کنید و نه بر آن پیشی خواهید گرفت وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ, يرجع بعضهم إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُونُ الَّذِينَ اسْكُوا اضْعِفُوا <KPK> کافران گفتند ما هرگز به این قرآن و کتاب‌های دیگری که پیش از آن بوده ایمان نخواهیم آورد اگر ببینی هنگامی که این ستمگران در پیشگاه پروردگارشان برای حساب و جزاء نگه داشته شده اند در حالی که هر کدام گناه خود را به گردن دیگری میاندازد، از وضع آنها تعجب می‌کنید مستضعفان به مستکبران میگویند: اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدا بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين اما مستكبران بمستاز افن پاسخ میدهند آیا ما شما را از هدایت بازداشتیم بعد از آن که به سراغ شما آمد بلکه شما خود مجرم بودید وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار اذ تأمروننا اذ تأمروننا نكفر بالله ونجعل له اندادا و اصرون لما رأو العذاب و الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون و مستغفان به مستقبران میگویند وسوسه های فریبکارانه شما در شب و روز مایه گمراهی ما شد هنگامی که به ما دستور میدادید که به خداوند کافر شویم و همتایانی برای او قرار دهیم. و آنان هنگامی که عذاب الهی را می بینند، پشیمانی خود را پنهان می کنند تا بیشتر رسوا نشوند. و ما قل و زنجیرها در گردن کافران می نهیم. آیا جز آنچه عمل می کردند به آنها جزا داده می شود؟ و ما ارسلنا في قرية من نذیر الا, الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون و ما در هیچ شهر و دیاری پیام بری بین دهنده نفرستادیم مگر اینکه مترفین آنها که مست ناز و نعمت بودند گفتند ما به آنچه فرستاده شده اید کافر ایم. و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین و گفتند اموال و اولاد ما بیشتر است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد قل إن ربی يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ولكن, ولكن أكثر الناس لا علمون بگو پروردگار من روزی را برای هركس بخواهد وسیع یا تنگ میكند ولی بیشتر مردم نمیدانند اموال قوم و لا بالتي تقرب قوم عين دناز من آمن و عمرا صالح، وَهُمْ لهم جزاء ضعف بما عملوا، وهم في الغرفات آمنون هرگز شما را نزد ما مقرب نمی‌سازد جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالحی انجام دهند که برای آنان پاداش مضاعف در برابر کارهایی است که انجام داده اند و آنها در های بهشتی در نهایت امنیت خواهند بود وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اولئك اُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ و کسانی که برای انکار و ابطال آیات ما تلاش می و میپندارند از چند قدرت ما فرار خواهند کرد در عذاب الهی احزار می شوند. قل ان ربي يضبط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين بگو پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد وسعت میبخشد و برای هر کس بخواهد تنج میسازد و هر چیزی را در راه او انفاق کنید عوض آن را میدهد و او بهترین روزی دهندگان است. و يوما يحشرهم جميع ثم يقول للملائکه ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَهَا أُولَائِ ایَّاكُمْ يَعْبُدُونَ به خاطر بیابر روزی را که خداوند همه آنان را برمی سپس به فرشتگان میگوید آیا اینها شما را پرستش میکردند؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون آنها میگویند منزهی از این که همتایی داشته باشی تنها تو ولی مایی نه آنها آنها ما را پرستش نمیکردند بلکه جن را پرستش می و اکثرشان به آنها ایمان داشتند فالیوم لا يملک بعضكم لبعض نفعا ولا ضررا و نقول و نقول للذین ظلموا ذوقوا ذوق و عذاب النار تکذبون آری امروز هیچ یک از شما نسبت به دیگری مالک سود و زیانی نیست و به ظالمان میگویین: بچشید عذاب آتشی را که تکذیب می کردید و ایزا تتلا علیهم قالو قالوا ما هذا إلا رجل يريد أئيا يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا افكم مفترى و هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنان خوانده می می‌گویند او فقط مردی است که میخواهد شما را از آن که پدرانتان می‌پرستیدند باز دارد و میگویند: این جز دروغ بزرگی که به خدا بسته شده چیز دیگری نیست و کافران هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند این جز افسونی آشکار نیست و ما آتیناهم من کتب یدرسونها رسونها و ما ارسلنا الیهم قبلك من نذیر ما قبلا چیزی از کتابهای آسمانی را به آنان نداده ایم که آن را بخوانند و به اتکای آن سخنان تو را تکزیب کنند و پیش از تو هیچ بیم دهنده برای آنان نفرستادیم. دادیم و کذب قبلهم وما بلغوا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا كَانَ <نَكِير> کسانی که پیش از آنان بودند نیز آیات الهی را تکثیب کردند در حالی که اینها به یک دهم آن به آنان دادیم نمی رسند آری، آنها رسولان مرا تکثیب کردند پس ببین مجازات من نسبت به آنها چگونه بود؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد شما را تنها به یک چیز اندرز می دهم و آن این که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید سپس بیندیشید این دوست و همنشین شما محمد هیچ گونه جنونی ندارد او فقط بیم دهنده شما در برابر عذاب شدید الهی است قل ما سألتكم من اجر فهو لكم إن أجری الا على الله وهو علی كل شء شهید بگو هر اجر و پاداشی از شما ام برای خود شماست اجر من تنها بر خداوند است و او بر همه چیز گواه است قل این ربی قذف بالحق علام الغیوب بگو پروردگار من حق را بر دل پیام بران خود می افکند که او دانای قیب ها به اسرار نهان است قل جاء الحق و ما يبدئ الباطل و ما يعيد. بگو حق آمد و باطل کاری از آن ساخته نیست و نمیتواند آغازگر چیزی باشد و نه تجدید کننده آن قل ان ضللت فانما فا اضل على نفسي وانهتديت فبما يوحى الي ربي انه سميع قريب بگو اگر من گمراه شوم از ناهی خود گمراه می شود و اگر هدایت یابم به وسیله اون پروردگارم به من وحی می کند هدایت می یابم او شنوای نزدیک است ترا فزعوا فلا فوت من مكان قریب. اگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند می شود اما نمی توانند از عذاب الهی بگریزند و آنها را از جای نزدیکی که حتی انتظارش را ندارند می گیرند از درماندگی آنها تعجب خواهی کرد و قالوا آمنا به و لهم التناوش من مکان بعید و آن حال می گویند به حق ایمان آوردیم ولی چگونه می توانند از فاصله دور به آن دسترسی پیدا کنند و به من و من آنها پیش از این به آن کافر شدند و دورا دور و قایبانه نسبتهای ناروا می دادند وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل ان لهم كانوا فی شك مریب سرانجام میان آنها و خواسته هایشان جدایی افکند شد همان گونه که با پیروان و هم مسلکان آنها از قبل عمل شد چرا که آنها در شک و تردید بودند